سلام امیدوارم حالتون خوب باشه این اپیزود پنجم پادکست الف پادکستی که توش ما در هر قسمت یک نمایشنامه رو خلاصه میکنیم و برای شما میخونیم در واقع هر قسمت از پادکست علف روایتی نسبتاً عمیق از یک نمایشنامه است در این قسمت سراغ نمایشنامه دشمن مردم اثر هنریک ایپسن نویسنده نروژی رفتیم که در اون شخصیت اول نمایشنامه دکتر استوکمان کاملا یادآور خود هنریک ایبسن و بسیار نمایشنامه مهمیه تا جایی که با وجود نمایشناما های مثل خانه عروسک بین اسار ایپسن این اثر عنوان مهمترین اثر ایپسن شناخته میشه و خیلی توصیه میکنم کنمم بشنوید و نمایشنامه به شکلیه که لازم نیست من اصرار کنم فکر می کنم خودتون ناخودآگاه بعد از شنیدنش تصمیم میگیرید برای بعضی از آدم ها نمایشناما رو به اشتراک بگذارید. خانم یسنا نظری پول که قسمت اول و نمشنامیی داستان باغ رو خلاصه کرده بود، در این قسمت هم زحمت خلاصه کردن دشمن مردم رو کشیده منبع ایشون و کلن پادکست الف برای این قسمت ترجمه های فارسی این نمایش بوده که از همه بیشتر ما از کتاب دشمن مردم و ایبسن آشوبگرای استفاده کردیم که امیر حسین آریانپور اون رو به فارسی ترجمه کرده و نشر گستره اون رو چاپ کرده من خیلی ممنونم از نظرات مثبت و کمک کننده شما درباره پادکست الف. امیدوارم که این قسمت رو هم دوست داشته باشید شبکه اجتماعی پادکست رو در تلگرام، اینستاگرام و توییتر با ادرسه الف پادکست دنبال کنید و اگر نمایشنامه رو دوست داشتید نسخه چاب شدهش رو حتما تهیه کنید و به صورت کامل خودتون هم بخونید. بریم سراغ دکتر سکمان و برادرش در نمایشنامه دشمن مردم. که گفتم هنریک ایپسن نمایشنامه نویس کشور نروژ و البته دقیقا همون کسیه که نروژ بهش احتیاج داشت چون مدتها بود که این کشور اسکاندیناوی نمایشنامه نویس درسته حسابی نداشت ایشون درک و شناختش به نظر میرسید که از مردم کشور خودش یا حتی زمانه خودش جلوتر بود و فشارهای زیادی بهش وارد شد منتقات تا جایی که تونستن و از دستشون بر نقدش کردند و اگاهی حتی زیر نقد له هم کردند البته ایپسن هم اهل مدارا نبود اون به حرفهای خودش اونقدر اعتقاد راسخ داشت که در پاسخ به نقدهای شدید و فراوان علیه یکی از نمایشنامهاش به نام ارواح یا جنزدگان وقتی دید با دفاعی نویسی در روزنامه راه به جایی نمیبره نمایشنامه دیگه نوشت و خودش رو جای شخصیت اول شنی یعنی دکتر استوکمان قرار داد تا بتونه به بهترین نف پاسخی بده به همه فشارهایی که کردند. و جالبه بدونید که همین اثر یعنی نمایشنامه دشمن مردم که در سال 1882 نوشته شده همینطور که قبلا هم گفتم تبدیل شد به یکی از آثار شاخصش آقای آریان پور یکی از مترجمین این اثر میگه جالبه که مردم هر کشوری بدون اینکه شرایط تاریخی یا محیط اجتماعی کشور نروژ رو در نظر بگیرن تصور میکنن که هدف انتقاد ایبسن کشور خودشونه و این مسئله حتی درباره ایران خودمون هم میتونه صدق کنه خب اگر کنچکاف شدید دشمن مردم دقیقاً چی میگه و ایپسن چی کار میخواسته بکنه این قسمت از پادکست علف رو بشنوید بریم سراغ نمایش داره. اینجا شهری کوچک و ساحلیه در جنوب نروژ، شهر زادگاه همین نویسنده و ماجراهای نمایشنامه از خانه دکتر استوکمان که پزشک و طراح همام های معروف طبی شهره و روشون هم نظارت داره شروع میشه و اگه شما در صحنه تئاتر نشسته بودید اتاق نشیمن مطبوع و دلنشین رو میدیدید که اساسیش گرون قیمت نیستن، خیلی سادن، اما خب خیلی جذاب، چی دمان شدند سمت راست دو دوتا در هست که یکیش به سرسرا میخوره یکیش هم به اتاق دکتر سمت چپ صحنه یه بخاری و یه میز بیزی شکل هست که تازگی ها با رومیزی خیلی زیبایی تزین شده البته به همراه چراغ حبابدار نوعی که روشنه و در کنار سایر اسباب و اساسیه جلوه نور ملایم و با شکوهی به اتاق بخشیده یه در هم روی دیوار عقبی هست که باز ازلاش میشه اتاق غذاخوری مخصوصا میز شام رو دید که از ظاهر به هم ریختش معلوم شام صرف شده با اینها روی که از صندلی ها آقایی به نام بیلین نشسته و با دستمال ای که زیر چونش جمع کرده معلوم تازه میخواد خوردن غذا رو شروع کنه دکتر استوکمان اما خونه نیست و انگار فراموش کرده مهمون داره و همراه جفت پسر که یکیشون 10 سالشه و اونیکی یکی 13 سال رفتن به پیاده روی بعد از شام. خانم کاترین همسر آقای دکتر همیطور که مشغول رسیدگی به مهمونشه داره از مهمونش به خاطر اینکه دیر رسیده و مجبور قضا رو سرد بخوره عذرخایی میکنه و در انتظار مهمونه بعدیشونه آقای هوفستاد. بیلینگ و هوفستاد هر دوشون در روزنامه آزادیخواه ندای مردم فعالیت میکنن. بیلینگ نویسنده و هوفستاد سردبیر این روزنامه است. همچنان که خانم کاترین منتظره بالاخره صدای در رو میشنوه. اولش فکر میکنه هوستاده، اما وقتی در رو باز میکنه، آقای شهردار رو میبینه که ناگهان با پالتوی نظامی بر تن، کلاهی نظامی بر سر و اسایی نظامی در دست وارد میشه. شهردار یا پیتر استوکمان برادر دکتر استوکمان خودمونه. پیتر وقتی میفهمه برادرش بعد از خوردن شام نسبتا سنگین کباب گوساله با پسرهاش رفته پیاده روی، اصلا روی خوشی به این جریان نشون نمیده مثلا از نظرش شام باید ساده و کم هزینه باشه مثل نون و کره و چای نه این همه پرخرج پیادروی بعد از شام هم که اصلا خوب نیست کلن حرفای شهردار با یک جور کنایه همراهه سعی میکنه با ادبیات فاخر و سطح بالا حرف بزنه و اصطلاحات آمیانه رو به کار نبره چون به نظرش دور از شعن و مقامش میان اما خب بعضی از افکارش مخصوصا. فکرهای بنیادینش در سطح پایینی قرار دارن و با یک جور بدبینی و خودخواهی یا حتی کچ همراهند حالا هرچی نمایشنامه جلوتر میره بیشتر با طرز فکر برادر دکتر استوکمان آشنا میشیم کم کم حفظتاد هم از راه میرسه حفظتاد اگر یادتون باشه سردبیر روزنامه ندای مردمه و مثل اینکه توی چاپخونه معتلش کرده بودند شهردار از دیدن هوفستاد تجرب میکنه، هرچند ظاهرم بروی خودش نمیاره ولی وقتی میفهم فهمه هوفستاد به خاطر مقاله برادرشه که اینجا است و از زبون خود و هوفستاد هم می شنبه که دکتر سکمان هر وقت به موضوع اجتماعی مفیدی بر بخوره مقاله برای روزنامهش می نویسه سوه راجع به کارهای برادرش تقویت میشه. فکر میکنه برادرش این مقاله ها رو صرفا برای جلب توجه مردم می نویسه. با این حال میگه که با وجود اهداف برادرش اما به حسننیت روزنامه ندای مردم شکی نداره. و اضافه میکنه که اساسا شهر ما شهر حسننیته و وقتی که وضع عمومی شهر رو در نظر بگیریم میبینیم که شهر زندهیه. وقتی پای امور عمومی در میانه همه مردم خوب شهر ما متحدند مثل یک تن واحد البته به خاطر منافع مشترکی که دارند. منظور شهردار از منافع مشترک، هممام های تقریبا نوساز و تبیه شهرند که از نظرش به زودی قلب شهر میشن. چون تو این چند ساله که هممام ها رو ساختن، شهر کلی بابتشون توسعه پیدا کرده و پول مثل سیل به این شهر روونه شده. که البته درست هم میگه، خب بازار کاسبی کاملا گرم شده و قیمت زمین و خونه هم روز به روز ترقی کرده. بیکاری هم کم شده و درآمد طبقه کم درآمد بالا رفته و همه فشار مالیات دیگه روی شونه طبقه مالک نیست و اینا هم کم چیزی نیستند حتی شهردار در ادامه حرفاش میگه امیدوارم که وضع از اینم که هست بهتر بشه و تابستون امسال از همه جا برای درمان یا استراحت به این شهر بیان و های طبی رونق بیشتری پیدا کنند مخصوصاً که هر روز از دور و نزدیک راجع به وضع ها و ها از شهرداری استعلام میشه حرفای شهردار به اینجا که میرسه هوفستاد میگه که پس مقاله دکتر باید خیلی به موقع باشه. شهردار کنجکاف میشه و میپرسه مگه این روزها هم دست به قلم برده؟ و هوفستاد براش میگه که در اوایل زمستون دکتر مقاله‌ای درباره ها و وضعیت رضایت بخششون داده بود اما چون فکر کرده بود که فصل بهاره و مردم به طور جدی برای تعطیلات تابستونشون نقشه میکشن انتشارش رو تا الان بقب انداخته بود خانم کاترین هم اضافه میکنه موضوع حمام ها که به میون میاد تو ما سرش نمیشه کاترین اینو میگه تا حس مسئولیت پذیری شوهرش رو به شهردار نشون بده شهردار اما این کار وظیفه دکتر میدونه میگه باید هم اینطور باشه ناسلامتی اون پزشک حمام هاست اما حفستاد یاداوری میکنه که موجودیت حمام مرهون دکتره چرت عصبی میشه و میگه خودش هم ناسلامتی در این کار سهمی داره. کاترین هم که حسابی حواسش رو جمع کرده که میونه دو برادر یه وقتی شکراب نشه، فورا تایید میکنه که توماس هم دقیقا همیشه همینو میگه. هوفست هم وقتی میبینه اون رو خراب کرده، حرفش رو اصلاح میکنه و میگه کسی منکر این نیست. همه ای ما میدونیم که های طبی به همت جنابالی ساخته شدند. منظور بنده این بود که فکر و طرح حمامها رو دکتر به میون گذاشت. امو شهردار عصبی تر از قبل میگه فکر و طرح حمام ها بله چنته ی برادرم همیشه پر از طرح و فكره اما وقتی اجرا که میرسه باید دنبال آدمای دیگه باشین آدمای که از خمیره دیگه ای باشن کاترین که میبینه اوزا وخیمه وسط حرفای شهردار تعارفشون میکنه برای خوردن غذا تا بحث بیشتر از اینکه نیاد استاد با کمال میل میره شهردار میمونه و کاترین که تلاشش برای درست کردن میونه شهردار با همسرش راه به جایی نمیبره. بالاخره سر و دکتر پیدا میشه. دکتر شاد و خندان به همراه ناخدا هرستر که توی خیابون بهش اتفاقی برخورد کرده تعارف میکنه به داخل خونه ولی خب متوجه حضور برادرش نمیشه. دکتر بچهاش رو که به قول خودش مثل قهدی زده ها بازگش نشون شده ولبته ناخدا رو دعوت میکنه به خوردن غذا. خودش هم میخواد همراهیشون کنه که با اشارهای همسرش تازه پی به حضور برادرش میبره. دکتر که اصلا روحش هم از حرفایی که اینجا زده شده خبر نداره، با روی باز از برادرش استقبال میکنه و میگه آقای پیتر شما کجا؟ اینجا کجا؟ دیگه بهتر از این نمیشه. شهردار که با وجود استقبال گرم برادرش همسر گرمهاش باز از هم باز نمیشه میگه که میخواد بره ولی دکتر میگه اصلا حرف رفتن رو هم نزنه و ازش میخواد پیششون بمونه تا با هم لبی از گروک اگر درست خونده باشم تر کنن کروک من اطلاعات زیادی درباره پیدا نکردم ولی ظاهرا یه جور نوشابه الکلی دست سازه که هر کسی به طبع خودش میتونه ترکیب الکل و قندش رو کم و زیاد کنه. توی اون مناطق بیشتر خورده میشه. اطلاعات زیادی درباره من واقعا پیدا نکردم. نمیدونم اسمشم درست میگم یا نه. شهردار امتنا میکنه و میگه که تو این جور مجلس ها شرکت نمیکنه و بعد هم نگاهی میندازه به اتاق غذاخوری. کالا حالا تقریبا همه غذاهاش خورده شده. شهردار چیزی رو که میبینه باورش نمیشه. معلومه از نظرش این قضیه خیلی جایی تحصف داره. برعکس دکتر این قضیه رو به فال نیک میگیره و میگه جوونا اشتها دارن. باید هم داشته باشن. باید زیاد بخورن تا بتونن دنیا رو زیر رو کنن. جوونا ها ممارای آیندن. از نظر دکتر همه چیز در حال تحوله شهردار اما قبول نداره، دکتر هم خب سرزنشش نمیکنه و میگه مسلما شما نمی تونید من تحول محیط رو احساس کنید و ازش لذت ببرید تموم عمر شما در همین محیط گذشته. یک نباختی محیط حساسیت شما را از بین برده ولی من، منی که سالهای سال در مناطق دور شمالی زندگی کردم، منی که مدتها با مردمی که هیچ حرف تازهی برای گفتن نداشتن طرف بودم اینجا توی همین شهر شما تحول رو خوب احساس میکنم اینجا زندگی جریان داره. خیلی چیزا هست که میشه به خاطرش تلاش کرد، میشه به خاطرش مبارزه کرد. و یهو صدا میزنه، کاترین، نامهای برام نیومده؟ کاترین هم از اتاق غذاخوری جواب میده که نه. دکتر منتظر نامه مهمیه و در تعجبه که چرا این نامه به دستش نمیرسه دکتر حرفاش رو از سر میگیره. از زندگی آسوده‌ای که الان داره میگه از اینکه آدم وقتی قدر آسایش رو میدونه که سختی کشیده باشه وقتی که تم سخت بیغذایی و نبود صحبت رو حسابی چشیده باشه از اینکه حالا نون و آبی داره و امروز حتی سر میز ناهار و شام کباب گوساله دارن خوشحاله شهردار اما با همون بینش خودش با تعجب میپرسه چطور بودجه شما از اوطه این قبیل تجملات برمیاد مخصوصاً که دکتر بهش با ذوق و شوق رومیزی جدید و حباب چراغ رو که با پسند های کاترین خریده بودن رو هم نشون میده. دکتر میگه که از نظر کاترین حالا دیگه خرج و دخلشون با هم میخونه و به شهردار اطمینان میده که در هیچ موقعیتی خرج بیجا نمیکنه. اما در هر حال نمیتونه در خونش رو بروی مردم هم ببنده مخصوصاً که سالها در مناطق محروم شمالی از هرگونه معاشرت محروم بوده. اونقدر که دیگه معاشرت برات شده یه ضرورت حیاتی. دکتر میگه باید معاشرت کنه مخصوصا با جوونا، جوونای باهوش، پرشور، پرکار، آزادمنش، مثل امینا که دارن شام میخورن. کاش حفستاد رو بیشتر میشناخت. حرف به حفستاد که میکشه، شهردار یاد مقاله دکتر میفته که قراره به زودی منتشر بشه. شهردار این بار چندان هم نمیاد که این مقاله منتشر بشه. که دکتر باز حرفی میزنه که به مزاق برادرش چندان خوش نمیاد اینکه فعلا بهتر مقاله منتشر نشه شهردار مسلما توضیح بیشتری میخواد اما دکتر در همین حد بسنده میکنه که وضع الان عادی نیست میگه که شاید وضع کاملا غیر منتظره پیش بیاد شاید نیاد و اشتباه کرده باشه مسلما خب شهردار از اینکه برادرش همه ای ماجرا رو براش نمیگه خوشحال نمیشه اون کاملا حق خودش میدونه که چون رئیس هیئت مدیره های گرمه لازمه که از همه چیز مطلع بشه و به قول معروف کسی بی آب هم نخوره باید اختار میده که مطالب مربوط به هممام ها همیشه باید فقط و فقط به صورت رسمی مطرح بشه و نمیذاره کسی دخالت بیجا بکنه مخصوصا دکتر که از نظرش دوست داره الکی در هر کاری از عقیده و سلیقه شخصیش پیروی کنه شهردار به سریح در این شکل ممکن میگه هر فرد باید از مقاماتی که مسئولیت خیلی جامعه رو دارند اطاعت کنه و برادرش باید یادش بمونه دیر یا زود عقبت این خودرایی و خودسری رو پس میده شهردار اصلاً توجهی نمی‌کنه که بابا برادرش هم مسئولیت قابل توجهی در های آب گرم داره و بعد هم با همون خلق تنگش خداحافظی می‌کنه و میره. سردبیر هوفستاد با دیدن دکتر بهش میگه ظاهرا شهردار همچین سرحال نبود. دکتر هم اعصابه به هم برادرش رو رب میده به میده ضعیفی که داره و اینکه درست نمیتونه غذا رو حضم کنه. هوفستاد هم میگه به نظرم اشکال در اینه که ایشون ما روزنامه نویس ها رو نمیتونه درست تظمی کنه. کم کم معلوم میشه که شهردار و روزنامه آزادیخواه ندای مردم مدت هاست که با هم آبشون توی جوب نمیره و الان هم مثل یه آتش بس کوتاه. موقتاً با هم کنار اومدن. شام صرف شده و همگی در اتاق نشیمن دوره هم جمعن تا با هم پیپی پی بکشن و گپی بزنن و گیلاسی از کروک بنوشن. دکتر ناخدا هورستر رو پهلوی خودش میشونه و از طرز حرف زدنش معلومه که هم احترام خاصی براش قائله. و هم صمیمیت خاصی بینشون برقراره. بحث به زمان حرکت کشتی ناخدا میکشه و مقارم بودنش با زمان انتخابات. بیلینگ همون روزنامه نگار ندایی مردم تعجب میکنه که ناخدا هورستر نمی در انتخابات شرکت کنه و اصلا کاری هم به این کارا نداره. بیلینگ عقیده داره که جامعه مثل کشتی می و هر کسی باید یه دستی به سکان ببره. نا خدا حرسته اما عقیده دیگه ای داره. عقیده داره که اگر توی خشکی همچین چیزی ممکنه اما توی دریا هر کسی نمیتونه سکان رو نگه داره و طرف باید در این کار و اندازه کافی متخصص باشه تا از احتش بر بیاد. بنابراین آدمی باید رأی بده که از سیاست چیزی بدونه و علکی علکی که نمیشه رأی داد. بحث ادامه پیدا میکنه و این دفعه میرسه به چاپ مقاله دکتر توی شماره پسوردای روزنامه. دکتر میگه مواد چاپش کنین که فعلا صلاح نیست و اضافه میکنه که علتش رو الان نمیتونه بگه ولی بعدا همگی میفهمن همین موقع است که پترا دختر آقای دکتر هم از راه میرسه پترا کلاهی بر سر رو بر تن و یک دست دفتر زیر بغل داره نامهای به پدرش میده همون نامهی که دکتر چندین روزه که منتظر رسیدنشه دکتر با اجل نامه رو میگیره و بعد از تند و توندوسری به اتاق کارش میره تا اونو بخونه. نه پترا و نه حتی کاترین همسر دکتر هیچ کدوم نمیدونن این نامه از کی میتونه باشه. پترا هم اینطوره که داره برای خودش کروک میریزه میگه میترسه کار زیاد پدرش رو از پا در بیاره. پترا معلمه و روزی حدوداً 7 ساعت درس میده. با اینکه کارهاش زیاده و وقتی هم زار و نزار میرسه خونه باید تازه برگی دانش آموزانش رو تصحیح کنه. اما کارش رو دوست داره مخصوصا وقتی که کارش تموم میشه احساس خستگی خوشایندی بهش دست میده که باعث میشه شبها به هیچ معطلی به راحتی به خواب عمیقی فرو بره مرتن پسر ده ساله دکتر میگه پترا پس معلومه که آدم خیلی گناهکاری هستی چونکه زیاد کار میکنی و میگه آقای رولاند معلمشون همیشه میگه کار کفاره گناهانمونه ایلیف پسر بزرگتر میگه تو چقدر احمقی که این حرفها رو باور میکنی. بیلینگ اما از حرف های خوشش میاد. هوفستاد از مرتن میپرسه که میخواد در آینده چیکاره بشه؟ و مرتن هم میگه وایکینگ حتی اگه لازم باشه به خاطرش کافر هم میشه. وایکینگ ها اسکاندیناوی بودند و همگی هم کافر بودند و سده 8 هشتم تا دهم ده دائما به سواحل اروپا حمله میکردند. بیلینگ با وجود اعتراضهای های بینتیججه کاترین از مرتن طرفداری میکنه، و میگه من هم به خدا هیچ اعتقادی ندارم و خیلی هم به خودم میبالم. به زودی هم همه مثل من میشن. این تیکه حرفای بیلینگ رو خوب یادتون بمونه. مرتهم میگه اون وقت میتونیم هر کاری که میخوایم بکنیم. بیلینگ تایید میکنه اما قبل از تموم شدن حرفش خانم کاترین حسابی جوش میاره و پسرهاش رو میفرسته سراغ درس و مشقشون. پترا خب از این عکس عمل مادرش ناراحت میشه و میگه توی خونه حقایق رو از بچه‌ها میپوشونین. توی مدرسه هم علنا بهشون دروغ میگیم. از نظر پترا این کارا همش ریاکاریه و میگه شما نمیدونید که ما در مدرسه چه چیزایی به بچه ها یاد میدیم. چیزایی که اصلا خودمونم قبول نداریم. اگه وسیله داشتم خودم مدرسه ای میساختم که جور دیگه ای با بچه ها رفتار کنه. این عرف پترا رو هم باز یادتون بمونه. حرف به اینجا که میرسه ناخدا هورستر پیشنهاد میده سالن طبقه اول خونه موروسیش که اتفاقا بزرگم هست و تقریبا هم همیشه خالیه رو برای این کار استفاده کنه یعنی پترا توش مدرسه بسازه چون خودش ناخدا و همیشه در حال سفره و اونجا خالیه پترا اما میخنده و میگه میترسه مدرسه داریش هم دردی رو دوا نکنه هوفستاد هم تایید میکنه و میگه که از نظرش پترا برای روزنامه‌نگاری ساخته شده و ازش سراغ داستان انگلیسی رو میگیره که قرار بود پترا ترجمه کنه. درست وقتی که پترا میگه هنوز ترجمهش نکرده اما سعی میکنه به موقع به دستش برسونه آقای دکتر وارد میشه در حالی که نامه رو در دستش تکم میده. نامه ای که قرار نقطه شروعی باشه برای به قول خود دکتر یک کشف بزرگ. دکتر همینطور که از بالا به پایین قدم میزنه و از شدت حیجان نمیتونه بشه. میگه خب حالا دیگه وقتش رسیده به شما و مردم شهر خبر تازه بدم شاید بعضی ها بگن دکتر استوکمان خیال بافی کرده اما نه این دفعه دیگه کسی جعت نمیکنه هیچکس جرأت نمیکنه کاش برادرم همین اینجا بود حالا معلوم میشه که قضاوت اشخاص چقدر سرسریه همه میخوان بدونن جریان چیه؟ چیه که اینقدر دکتر استوکمان رو به هیجان آورده چیه که اینقدر با آب و تاب داره دربارهش مقدمه میچینه دکتر استوکمان میره کنار میز میسته و میگه میدونید که سلامت و خوش آب و هوا بودن این شهر در همه جا شهرت داره در حقیقت هم محل بسیار خوبیه چه برای بیمارها و چه برای سالمها. ها ما درباره شهر تبلیغات زیادی کردیم من خودم در ندای مردم همین روزنامه مقاله مقاله‌های متعددی نوشتم دکتر میگه و میگه و همه همچنان که حرفاشو تایید میکنن آمادن واسه شنیدن این خبر بزرگ تا اینکه بالاخره دکتر پرده از حقیقت ماجرا بر می داره. اما کسی باورش نمیشه باورشون نمیشه اون همومها با اون همه دب, دب و کب با اون همه خرج و مخارج باسه ساختنشون با اون شهرتشون نه تنها محل شفا و بخش برای درمان بیماری ها نبودن که کانون همه جور امراض مصری بودند. گورهای سفیدی که به جای درمان همه رو از دم به خاک سیاه می نشونن. جایی که فاضلا به دبا های شهر به آبش رخنه میکنه کنه. ماجرا حتی از اینم بدتره. این آب پر از میکروب به زمین های دریا و حتی آبهای ساحلی هم رسیده و همه شون رو آلوده کرده. دکتر تعریف میکنه کنه که مدت مدیدیه که روی این موضوع کار میکنه توی این مدت دائما از تردید و بلا تکلیف عذاب کشیده که کتابستون پارسال حسبه و بیماری های گوارشی افتاده بود به جون مهمون های شهر اولش تصور میکرده که این میکروب ها مال خود مهمونان که از خارج شهر با خودشون آوردن اما زمستون که میشه فکر دیگه‌ای به ذهنش میرسه و از همون موقع صبح تا شب مشغول آزمایش میشه اینو که میگه کاترین تازه پی میبره که تو این دو سه ماهه چی بوده که روز و شب همسرش رو ازش گرفته دکتر میگه بله کاترین موضوع این بود اما چون وسایل علمی لازم رو نداشتم کار به سرعت پیش نرفت آقای بعد مقداری از آب دریا و آب آشامیدنی شهر رو به دانشگاه فرستادم تا به وسیله کارشناس ها به دقت تجزیه بشن بعد هم نامه رو نشون میده و میگه نتیجهش اینه ثابت شد که توی شهر ما میکروب‌های گوناگونی توی آب هست که ماده زنده رو فاسد میکنه آب شهر مطلقاً خطرناکه چه برای آشامیدن چه برای شستشو نگرانی و ناباوری توی چهره تک تک افراد حاضر توی خونه پیداست کاتری میپرسه ولی خب تا حالا چرا چیزی نگفتی دکتر هم در جواب میگه به نظر درست بود اگه بدون دلیل قطعی قبل از اینکه چیزی اثبات بشه توی شهر جار میزدم و مردم را علکی میترسوندم من حرف بیدلیل نمیزنم بعد هم از کاتری میخواد که بره پیش پدر خودش و بهش خبر بده که دباخونه دب ها از جمله باخونه خودش بهداشت مردم رو به خطر انداختن. میگه پیرمرد مرد ساده دل گیج میشه. فکر میکنه من یاوه میگم اما مجبور قبول کنه. همه شما مجبورید قبول کنید. همه مردم مجبورن قبول کنن. دکتر باز دور و اتاق شروع میکنه به قدم زدن و همینطور که دستاشو به هم میماله به همسرش میگه کاترین. نمیدونید چه جوش و خروشی توی شهر پیدا میشه باید همه مجاری آب رو خراب کنیم و از نو بسازیم باید همه شونو یه متر بالاتر ببریم همینطور سطح هممام ها. ظاهراً دکتر قبلاً موقع ساخت هموم ها کلی هشدار داده بود که بابا باید سطح هموم و لوله های آب رو بالاتر برد اما هیچ کس نه کرده بود و نگوشش بدهکارن چیزا بود اگر یادتون باشه ایده ها از دکتر بود ولی اجراش با کسی دیگه بود پرتغال فروش رو خودتون پیدا کنید دکتر میگه حالا دیگه همه مجبورن به حرفش گوش بدن یه بیانیه برای هیئت مدیره آماده کرده و یک هفت از که روی میزشه و منتظر رسیدن نتیجه تجزیه بود تا ارسالش کنه و حالا دیگه وقتشه تا گزارش رو فورا براشون بفرسته بعد هم به اتاق کارش میره و با چهار برگ کاغذ که روی هر کدومشون با خط ریز هر توضیحی که لازم بوده رو نوشته برمیگرده نامه رو هم زمینه میکنه و اسکاتری میخواد اونا رو توی پاکتی بذاره و به خدمت کارشون که همیشه خدا اسمش رو یادش میره بده تا به دست شهردار برسونه. دکتر تصورش اینه که شهردار از این موضوع به قول خودش از این حقیقت حیاتی خوشحال میشه اوفسا هم نظرش بر اینه که بهتر فورا مردم را از این قطر خبردار کنند و در موردش مطلبی توی روزنامه ایی مردم بنویسند. همه دکتر و بابت این کشف بزرگ تحسین میکنن. حتی بلینگ و هوفستاد فکر میکنن که توی روزنامه پیشنهاد مراسم قدردانی از دکتر رو به مردم بدن. اما دکتر میگه که هیچ توقعی از هیچکس نداره و طالب تعارف و تشریفات نیست. حتی افزایش حقوق رو هم نمیپذیره و فقط برای این خوشحاله که تونسته خدمتی به شهر زادگاهش و همشهریهاش بکنه. کاترین کار شوهرش رو تایید میکنه و دکتر هم شاد و خندان همسرش رو بلند میکنه و دور اتاق میچرخونه همه شاد و سرمست میخندن و دست میزنند ایلیف و مرتن هم با کنجکاوی از لای در به داخل اتاق سرک میکشند از راه میرسه. کاترین نامه مهروموم شده ای را به دست همسرش میده. دکتر پاکت نامه را میگیره و با خوندنش متوجه میشه که برادرش گزارشش رو پس فرستاده و قرار ظهر بیاد پیشش. دکتر میگه احتمالا برادرش از اونجایی که خودش موضوع آلودگی آب رو کشف نکرده، هرچند در اصل خوشحاله اما احتمالا عکس عمل موافقی نشون نده. کاترین هم ازش میخواد که از طرز رفتار برادرش ناراحت نشه. و اونو هم تو این موفقیت شریک کنه یا حتی وانمود کنه که اون بود که باز شده یه همچین کشف بزرگی صورت بگیره دکتر هم میگه که حرفی نداره و تنها چیزی که میخواد نجات شهر از آلودگیه همین موقع مرتنکیل پدر خانم دکتر که مرتنکیل مرتن اسم پ... یکی از پسرای دکتر هم هست نگیرید. این مرتنکیل پدر اه... کاترینه پدر همسر دکتر که صاحب یکی از های شهره. از در سرسرا وارد میشه و اتاق رو با کنجکاوی از نظر میگذرونه. یادمون باشه که منشه آلودگی آب از همین ها بوده. مرتنکیل که خبر رو از نبش پترا شنیده، میخواد بدونه خب خبرها راستن یا نه. البته در هر صورت باور نمیکنه که به قول خودش مش جونور اومده باشن تو مجاری آب شهر و فکر میکنه این صرفاً قصه یه که دکتر از خودش ساخته تا پا توی کفش برادرش کنه. البته پدر همسرش از این قضیه خیلی هم خوشحاله و میگه ان با این کار درس عبرتی میدی به کله گنده های این شهر اینا که تا حاضر نیستن از آدم های دنیا دیدهی مثل من تمکین کنن حقشون همینه مثل اینکه مرتنکیل قبلا عضو شورای شهر بوده که به دلایل نامعلومی از اونجا اخراج میشه شاید مثلا قانون بازنشسته ها شامل حالش شده و حالا خوشحاله که به این شکل انتقامی از شهردار گرفته میشه دکتر هم هرچند چند میگه از این کار قرض شخصی نداره اما کیل باورش نمیشه و حتی نظر میکنه که اگر دکتر موفق بشه 100 که واحد پول نروژ و دانمارک رو صرف خیریه ها بکنه. اوفستاد از راه میرسه و کیل که فقط به فکر انتقام و منافع خودشه با دیدنش میگه دکتر حقا که حواست خوب جمعه. روزنامه جناب ایشون خوب به دردت میخوره. به هر حال هر بلایی تونستی به سرشون بیار. من مطمئنم زرار نمی کنی بعد هم از در خارج میشه و دکتر از اینکه پدر همسرش یا به قول خودش پیرمرد یک کلمه هم از حرفاش رو باور نکرده، خندش میگیره. بعد از رفتن کیل هوفستاد که به قول خودش از دیشب تالار داشته روی موضوع آلودگی آب فکر میکرده میگه این موضوع صرفاً یه موضوع سادهی بهداشتی نیست و دکتر صرفاً از نظریه پزشک عالم طب به موضوع نگاه میکنه و برای اصلاحش نقشه میکشه. اما اگر از نظر اجتماع بهش نگاه کنه میبینه که این موضوع به خیلی از موضوعهای دیگه هم مربوطه میگه برخلاف نظر دکتر که آلودگی شهر رو ناشی از کسافتهای ناهیهی در خونه ها میدونه به نظر خودش علت اصلی آلودگی منجلاب بزرگتریه منجلابی که تموم اجتماع رو بل ایده و روز به روز هم همه رو پایینتر و پایین تر میبره دکتر متوجه منظور حرفای حفستاد نمیشه. حفستاد هم میگه منظورش اینه که تشکیلات دولتی بدتر از یه منجلاب همه مساله شهر رو به خطر انداخته. میگه معمورین دولت اختیاردار همه چیز ما شدن. حتی آدم های اسم و رسمدار هم پیرو خط اونان و باهاشون دوستی و همکاری میکنن. اینا قدرت هایی که رو منتسلط دارن و زمام همه کارها رو در دست دارن. دکتر استوکمان اما همه این حرفای حفظات رو قبول نداره و میگه ولی این کار کاربلدن، بینش دارن. حفظات میگه وقتی ورودی های سیستم آپرسانی رو اینجور نصب میکردن کارایی دیدین ازشون؟ تصور دکتر اما اینه که با اینکه اونا با گوش نکردن به تموم حرفهاش طرح و زحمتهاش رو به باد فنا دادن. چون اگر یادتون باشه ایده اصلی طرحها از دکتر بود و اجراشون از شهردار اما به هر حال مطمئن که برادرش حالا دیگه اصلاح شهر و جبرانش رو میخواد. حفزدم مقبول نداره و میگه تا حمایت روزنامه ها نباشه کار به جایی پیش نمیبره و جز اون وظیفه خودش میدونه که موضوع رو دنبال کنه چون وقتی سردبیری روزنامه این دای مردم رو به عهده گرفت برای این بود که بتونه با همچین آدم های خودسری که قدرت های اجتماع رو قبضه کردن مبارزه کنه و حلقشونو در هم بشکنه. یادتون هست ابتدای داستان، رابطه شهر و افراد روزنامه زیاد گرم نبود و معلوم بود از قبل کدورتی بینشون هست. دکتر میگه ولی خودتون نتیجه مبارزه رو به من گفتید. بعض روزنامه ها هم به هم خورد و مجبور شدید عقب نشینی کنید. هوفسات هم میگه که مجبور شدیم چون اون موقع طرح حمام ها روی کار بود و ممکن بود مسکوت بمونه ولی حالا دیگه وضع فرق میکنه. دکتر بهش میگه فراموش نکنه که اونها مثبتی هم کردن. حفظات قبول داره ولی میگه من روزنامه نویس با این تمایلات آزادی خواهانم. حق ندارم از فرصتی که پیش اومده علیه طبقه حاکم استفاده نکنم باید به مردم حالی کرد که این ادعا که طبقه حاکم عقل کله و هر کاری میکنه درسته کاملا محمل و پوچه دکتر اینجا دیگه باش هم عقیده است و میگه درسته و باید تیشه به ریشه این فکر غلط زد و ادامه میده که چون از طبقه پایین اجتماع میاد از احتیاجات و انتظارات مردم به درستی اطلاع داره و میگه چیزی که برای مردم ضرورت حیاتی داره، شرکتشون توی مدیریت امور اجتماعیه. میگه مشارکت که باعث بالندگی مهارت‌ها و دانش و عزت نفس میشه. حالا هم که با کشف موضوع آلودگی فرصت مناسبی پیش اومده و به نظرش اگه روزنامه نویس این فرصت رو هدر بده، بجدانن در مقابل جامعه مسئوله هرچنک اسمش رو بذارن آشوب طلب و از جور چیزا اما مهم نیست مهم اینه که آدم وجدانش آسوده باشه همین موقع کسی با انگشت به در میزنه آسلاکسنه صاحب چاپخونه که در آستانه در سرسرا ظاهر میشه و تعظیمی از سر احترام میکنه آسلاکسن لباس سیاه رنگ رو رفته ای، اما ترتمیزه به تند داره با کراواتی سفید و چروکیده و دستکش و کلاه شاپویی که در دست داره وارد میشه اون روی صندلی نزدی که در میشینه و مثل سایر اعضای روزنامه ندای مردم حمایت خودش رو اعلام میکنه و میگه از دل و جان با مختصر نفوذی که در اصناف شهر داره در خدمت دکتره میگه اگه ما مردم طبقهی متوسط پشت سر جناب دکتر باشیم بیفایده نیست چون ما اکثریت مردم شهریم هرچند دکتر میگه موضوع حمام ها اونقدر لازم و اساسیه که فکر نمیکنه به حمایت اصناف نیازی پیدا بشه و حتما برادرش شهردار ترتیب همه این کارها رو میده اما آسلاکسن خلاف این عقیده رو داره و میگه من اولیای امور رو خوب میشناسم هیچ وقت حاضر نیستم به تقاضای مردم ترتیب اثر بدم مگر اینکه مجبور باشند آسلاکسن پیشنهاد میده که از طرف اصناف تظاهرات بشه البته با رعایت اعتدال کامل چون اعتقاد داره که اعتدال و میان روی بزرگترین فضیلت شهرونده و ادامه میده که هممام شهر براشون که جزء مردم طبقه متوسطن مخصوصا دارها و دارها مثل معدن طلا اهمیت دارن چون نونشون از هممام بنابراین وظیفه خودش میدونه که طرف دکتر رو بگیره آستوداکسن که ریاست اتحادیه مسافرخوندارها و مهمون خونه رو بر عهده داره و به علاوه نماینده انجمن اعتدالیون که کارش مبارزه با شرابخواری هم هست و به همین خاطر همیشه با آدمهایی به قول خودش کسیری در تماسه میه که همه بنده رو آدمی میدونن طرفدار اعتدال و قانون و از این جهت از بنده کمی حرف شنوی دارن اما لازم به گفتن نیست که هر اقدامی کنیم باید با احتیاط و اعتدال کامل همراه باشه تا مبادا اولیای امور برنجند اگر از راه اعتدال خارج نشیم مسلما روی موافق نشون میدن اینا رو با یه لحن داده ای میگه هوفستاد میخواد بگه حتی اگه روی موافق نشون ندن ما باز هم کاسلاکسن وسط حرفش میاد و میگه نه نه نه نه نه نه آقای هوفستاد هیچ صلاح نیست با کسایی که ریشو قیچی تو دستشون گلاویز شد به نظر میاد آسلاکسن عقیده داره که هیچ وقت و در هیچ موقعیتی نباید زیاده روی کرد حتی اگر لازم ضروری باشه. و در آخر هم به دکتر اطمینان میده می ما اصناف مثل یک کوه پابرجا پشت سر دکتر ایستادیم اکثریت مردم با شما وقتی که آسلاکسن میره حفظتاد که از حرفای آسلاکسن معلوم زیاد خوشش نایمده میگه این آسلاکسنش چاید آدم بدی نباشه ولی یکی از اوناییه که توی این منجلا به اجتماق اوتبرن رو نمیفهمن بیشتر مردم از همین قماشن گاهی به چپ میچسبن گاهی به راست از فرت احتیاط و وسواس نمیتونن برای هیچ کاری ازمشون رو جزم کنن. اوفستاد نظرش اینه که آدم باید متکی به خود و قاطع باشه. این بط قدرت پرستی باید در هم شکسته بشه و باید همه مردم بفهمن که مقامات دولتی در مورد هممام مرتکب چه خطای بزرگی شدن و به همین دلیله که لازم گزارش دکتر حتماً چاپ بشه. و دکتر هم بهش میگه که اگه این کار به سود مردم باشه حرفی نداره اما قبلش باید با برادرش صحبت کنه تا ببینه برای ساخت مجدد چه راهکار و نظری توی فکرش داره اما هوفستاد که فکر میکنه شهردار به احتمال خیلی زیادی با انجام این کار مخالفت میکنه میگه ستون پس فردای روزنامه رو به این موضوع اختصاص داده بنابراین دکتر پاکت گزارشش رو تحویل حفستاد میده تا بخونه و نظرش رو دربارهش و همینطور ازش اطمینان میگیره که اگر لازم به چاپ به این گزارش شد که به نظرش به احتمال زیاد میشه گزارش رو بی کم و کاس چاپ کنه بعد از رفتن هوفستاد دکتر به اتاق غذاخوری میره و با دیدن کاترین و پترا با خوشحالی میگه که روزنامه ندای مردم که یه روزنامه مستقل و آزادیخواهه و همینطور رئیس ایتالیای مسافرخانه و مهمان دارها در واقع همون آقای آسلاکسین که رئیس چاپونه هم هست ازش حمایت میکنن و جز اون اکثریت مردم هم پشتیبانه چند دکتر همینطور که از بالا به پایین قدم میزنه و دستاشو به هم میماله میگه چه سعادتی بزرگتر از اینکه آدم مورد اعتماد مردم باشه و دخترش ادامه میده و بتونه بهشون خدمت کنه صدای در میاد و شهردار وارد میشه شهردار معلومه که میخواد خصوصی با برادرش صحبت کنه با طرز نگاه مخصوصش باعث میشه تا کاترین به همراه اتاق سمت چپ برند. شهردار اول از همه میخواد بدونه که چرا دکتر تا دیشب جریان رو ازش پوشونده و بعد اینکه چرا اینقدر توی گذارشش مبالغه کرده. مثلا چرا گفته هر از از ها استفاده کنه آلوده میشه؟ دکتر هم میگه که تا دیشب خب خودش هم از نتیجه مطمئن نبوده و مگه حقیقت غیر از اینه؟ چرا باید بیمارهای امیدواری که برای درمان به اینجا میان رو گول زد؟ شهردار میگه اصلاً فکر کردی ساختن مجاری جدید و بعد هم گنداب روها واسه فاضلاب دباخونه ها چقدر خرج برمیداره؟ مهندس شهرداری وقتی ازش پرسیدم فکر کرد دارم شوخی میکنم چون این تغییرات چند ست هزار کرون خرج داره و تازه دو سال هم طول میکشه اون وقت دو این مدت چیکار کنیم بیمارها رو راندیم؟ وقتی گردشگرا موضوع آلودگی رو بفهمن دیگه عهد و ناسی پاشو اینجا نمیذاره اونم حالا که هممام های ما واسه خودشون برو بیایی دارن بعدش میدونی چی میشه فکر کردی شهرهای مجاور هم واسه جلب توجه مسافر دست و پا نمیزنن و وقت ما میمونیم و حموما و پولای برباد رفته ای مردم شهر که توی این راه خرج کردند. دکتر هر چند از شنیدن خرج و مخارج ساخت مجدد غافلگیر شده ولی خب کوتاه نمیاد و میگه چاره چی خطر رو که نمیشه نادیده گرفت شهردار قبول نمیکنه و همچنان روی حرفش میمونه میگه دکتر داره مبالغه میکنه میگه شاید بعدها ها هیئت مدیره حمام ها محض احتیاط یک سری اصلاحات محدود عمل بیارن. اما الان وقتش نیست. حالا نوبت دکتره که با شنیدن این حرفا مثل برادرش کفری بشه و بهش میگه که حاضر نیست مقابل این حق و فریب کاری بشینه. چون سکوت شهردار جنایتی نسبت به مردم و همینطور کل جامعه. شهردار اما گوشش به این حرفا بدهکار نیست و بازم بهونه میاره که هنوز قانع نشده و از نظرش خطر اونقدر که میگن جدی نیست. دکتر اما زیر بار نمیره و میگه البته که قانه شدی با اون گزارش دقیق و مفصلی که من نوشتم امکان نداره قانه نشده باشی منتها ها نمیخوای قبول کنی چرا چون خودت بودی که اصرار داشتی کل تاسیسات چشمه های معدنی این شکلی ساخته بشن در حالی که من بهت گفته بودم اشتباه حالا هم نمیخوای قبول کنی که اشتباه کردی شهردار هرچند چند قبول داره که اشتباه کرده اما میگه برای حفظ حیثیتم هم, هم که شده باید سکوت کرد وگرنه به ضرر مردمه. چون اونه که داره شهر رو اداره داره میکنه. پس اگر به اعتبارش خطی وارد بشه، دیگه خب نفوذی بر مردم نداره و شهر به هم میریزه. پس موضوع باید سر به مهر باقی بمونه تا بعداً بشه محرمانه بهش رسیدگی کرد. اما دکتر آب پاکی رو روی دست شهردار میریزه و میگه دیگه کار از کار گذشته. میگه خوشبختانه روزنامه مستقل لیبرال ندای مردم از این به بعد بهش هست تا ببین آیا به وظیفه خودش عمل میکنه یا نه. شهردار از گره در میره و دکتر و متوجه آخر اقبتی که در انتظار خودش و خونه وادشه میکنه و چون احتمالا می بینه راه دیگه براش نمونده حرف گذشته ها رو هم پیش میکشه بهش میگه که همیشه سعی کرده بود برای برادرش مفید باشه هر کمکی از دستش برمی اوومد براش انجام داده مثل همین شغلی که بهش داده اونم فقط برای اینکه دکتر هم متقابلا مسالله اونو رایت کنه هرچند انگار شهردار توجهی نداره که همین شغلی که دکتر توشه توی این شهر خودش از همه بیشتر صلاحیت انجامش رو داشته. شهردار به اینها بسنده نمیکنه و حرف نوشته های دکتر رو هم به میون میاره و ازش ایراد میگیره که چرا در هر کاری دخالت میکنه و تا هر فکری به ذهنش میرسه دست به قلم میبره و مقاله و رساله بیرون میده و با این کار الکی داد و بیداد راه میندازه. دکتر میگه وظیفه هر شهروندیه که وقتی فکر جدیدی به ذهنش رسید در اختیار بقیه بذاره. شهردار هم جواب میده مردم به فکر نو احتیاج ندارن و همون سنت ها براشون کافیه بعد هم شهردار از دکتر میخواد قبل از اینکه موضوع به وسیله مخالفاش یک کلاخ هل کلاخ بشه خودش هرچه زودتر تموم حرفاش رسما و صریحا تکذیب کنه و بگه موضوع اونقدر ها هم که گفته موضوع جدی و فوری نیست و به مردم شهر اطمینان بده که هیئت مدیره حمامها ها مشغول رفع ایراداتن اما دکتر جواب میده آلودگی آب چیزی نیست که بشه با یه دستکاری ساده رفعش کرد. به خاطر همین نمیتونه غیر از همونی که گفته بود چیز دیگه ای بگه. دکتر از آزادی بیان هم حرف میزنه، اما شهردار پافشاری میکنه، میگه تا وقتی که در حیت مدیره ها سمت رسمی داره، ابدا حق نداره مثل یه فرد غیر مسئول عقیده شخصی خودش رو به میون بیاره. این صرف یه موضوع پزشکی یا علمی نیست، جنبه اقتصادی داره، جنبه اجتماعی داره. شهردار همچنان روی حرفهاش میمونه که لازمه دکتر گزارشش رو تکزیب کنه وگرنه مجبوره خودش اعلامیه‌ای برای جلب اعتماد عمومی صادر کنه و اگر دکتر بخواد با استفاده از قلمش و نویسندگیش با هاشون مبارزه کنه ناچارن حکم اخراجش رو صادر میکنه تا دستش از این جریان کوتاه بشه حالا دیگه با بالا گرفتن بحث دکتر و برادرش پترا و کاترین هم به جمعشون ملحق میشن وقتی پترا به رفتار اموش اعتراض میکنه، کاترین جلوش رو میگیره. در نتیجه شهردار رو به کاترین میگه: "خانم کاترین، خیال میکنم که آدم عاقل تو این خونه شما سعی کنید تا جایی که میتونید در همسرتون نفوذ کنید. بهش بفهمونید که این ماجرا چه عواقب وخیمی داره، هم برای خودش، هم برای شما که خونوادش باشید. و حتی هم برای شهر." و بعد به دکتر میگه با این لجاجتش فقط منبع درآمد شهر رو داره نابود میکنه. دکتر میگه آخه مرد حسابی این منبع بزرگی در شهر بوی مرگ میده. مگه ای که میخوای با فروش کسافت و مرز امرار معاش کنی؟ میبینین؟ نادرستی شده اساس زندگیمون. شهردار میگه همه اینا خیال وافیه. بدتر از خیال وافی. آدمی مثل تو که میخواد تیشه به ریشه سعادت شهر بزنه بدون شک دوست مردم نیست. دشمن مردمه. دشمن مردم. ادر آخر هم حرفاشو اینجوری تموم میکنه. پیش خودت فکر کن ببین نسبت به خودت تو خانوادهت چه وظیفه‌ای داری و بعد خارج میشه. دکتر حسابی عصبانی. کاترین هر حق رو به شوهرش میده اما سعی میکنه آرومش کنه و هم میگه در نظر بگیره که برادرش قدرت داره. پترا حرف مادرش رو قبول نداره. دکتر هم همینطور هم میگه روزنامه آزادی خواه شهر راه رو برام باز میکنه. اکثریت همراه من. این قدرت نیست. کاترین دلش نمیخواد دو برادر با هم در بیفتن اونم به این شکل دکتر ولی کاری به این چیزا نداره مهم فقط براش اینه که طرف حق رو بگیره هرچند مجبور بشه با برادرش علنا در بیفته پترا کار پدرش رو تایید میکنه و بهش روحیه میده اما کاترین همچنان تلاش میکنه تا شوهرش رو منصرف کنه دست به دامن یادآوری روزای گذشته میشه به یاد طعم تلخ فقر و ف به موقعی که نون و آبی نداشتن، به بیکاری که با حکم اخراجش ممکنه گیرش بشه، به اینکه باید به فکر پسرهاش هم باشه که هنوز نتونستن مثل پترا روی پای خودشون بایستن و مستقل بشن. پترا مداخله میکنه و میگه اجتماع از خونه مهمتره دکتر هم از در دیگه ای وارد میشه، میگه حالا که پیتر اونو دشمن مردم دونسته، اگر وظیفه‌شو نسبت به مردم انجام نده، تا آخر عمره میتونه با وجدان راحت زندگی کنه حالا دیگه پسرهای دکتر هم از راه رسیدند با کتابهای زیر بغلشون که نشون میده تازه از مدرسه برگشتند نمیدونن چی به چیه و حاج و واج موندند کاترین میگه به خدا گناهه ظلم تقصیر ها چیه قلب داشته باش دکتر که عزمش رو جزم کرده سمت اتاقش میره کاترین میره پی دکتر و میپرسه میخواد چیکار کنه دکتر دراستانه در اتاق میسته و میگه میخواد کاری کنه تا فردا که بچه ها بزرگ شدن بتونه توی روشون نگاه کنه. کاترین مستعصل و گریانه. پتره همه میگه پدر شجاعه و تسلیم نمیشه و بچه ها رو که با کنجکاوی نگاه میکنن با انگشت اشاره به سکوت پرامیخونه. از راه میرسه و حالا بخش سردبیری روزنامه ندای مردمه که روی صحنه دیده میشه. در قسمت عقبی صحنه سمت چپ در ورودی دیده میشه، سمت راستش هم در دیگه‌یه که از چیشه هاش میشه چاپخونه رو دید. در دیگه‌ای هم در دیوار سمت راست. میون اتاق میز بزرگی پوشیده از کاغذ و روزنامه و کتاب خودنمایی میکنه. میز تحریر سردبیر نزدیک به پنجره است. اتاق آشفته و ملالاوره. میز و سندلی ها کوهند. از شیشه های در چاپخونه چند حروف چین و یک چاپچی که با ماشین دستی کار میکنه مشاهده میشن. در حالی که سردبیر حفستاد پشت میز تحریر نشسته و سرگرم نوشتنه بیلینگ از در سمت راست با گزارش نامه دکتر در دست داخل میشه و اون رو روی میز میذاره. بیلینگ گزارش دکتر رو خونده هم بیلینگ و هم هوفستاد هر معتقدن این گزارش طوفانی به پا میکنه که بیا و ببین. بیلینگ حتی انقلاب رو نزدیک میبینه و میگه ما هم باید در این انقلاب سهمی داشته باشیم. باید دست به کارشیم تا کل اشرافیت سقوط کنه. حفظتاد که نگران ما با داستلاکسن یه وقت صداشونو بشنوه از بیلینگ میخواد که آروم حرف بزنه و بیلینگ صداشو پای میاره و میگه این آستلاکسن آدم کمدل و جرعتیه، هیچ مردونگی نداره ولی دیگه نباید مراعاتش رو بکنیم حفظت قراره اگر شهردار زیر بار نره مقاله دکتر رو حتماً چاپ کنه چون اینطوری میتونن بعض رو به نفع خودشون تغییر بدد در واقع اگر شهردار زیر بار نره خورد برجوها ها کاملاً بهش پشت میکنن یا همه اون صنف مهمون خوندارها و بقیه اگرم زیر بار پیشنهاد دکتر بره، دیگه از چشم همه اون خرپولهای سهامدار چشمه ها که تا حالا حامی اصلیش بودن میافته چون ناچارن باز دوباره سرمایه هنگفتی رو بذارن وسط در هر حال حلقه شهردار به هم می ریزه و اون وقته که فرصتی پیش میاد تا بتونن نشون بدن که شهردار از هر نظر بی ارزه است. نتیجه هم معلومه. بالاخره زمام امور شهر دست خودشون میافته دست لیبرال ها. همین موقع است که دکتر استوکمان از در ورودی وارد میشه و میگه دیگه وقتشه که گزارشش منتشر بشه میگه از امروز جنگ شروع میشه و تازه این ضربت اوله و طرح 4 پنج مقاله دیگر رو هم ریخته که هر چند راجع به چیزای دیگه ولی همشون منشهشون همین سیستم آپرسانی و فاضلاب شهره افراد روزنامه مطمئنن که همه طرف دکتر رو میگیرن چه که میانه رو ان که نیستن یعنی تقریبا همه مردم شهر قرار میذارن که مقاله بره برای چاپ توی ستون‌های روزنامه فردا صبح دکتر استوکمان از آس لاکسن میخواد که شخصا کار مقاله رو به عهده بگیره تا مقاله به بهترین شکل ممکن منتشر بشه و طوری نگاش کنه که انگار تلاست بدون هیچ غلط املایی و بدون هیچ نوع سانسور و تحریف دکتر که از برادرش هیچ دله خوشی نداره چون که تهدیدش کرد و ازش میخواست تا عمیقترین و مقدس‌ترین اعتقاداتش رو فدای منافع شخصیش کنه تصمیم داره که از این به بعد بشه لنگرگاه نگاه مردم و با مقاله های پی در پی بمبارونشون کنه چون از نظرش صرفاً مسئله سیستم آبرسانی و فازلاب نیست. حالا دیگه مسئله روح و فکر کل جامعه است که باید از آرودگی پاکسازی بشه. اون هم توی همه حوزه ها. از نظر دکتر باید رفت سراغ نسل جوون و برای همه پاسکاه ها تعیین کرد. و اگه همه بتونن متحد باشن، همه چیز خیلی راحت میتونه پیش بره. مثل به آب انداختن یک کشتی که کار یکی دو نفر نیست و همه باید مشارکت داشته باشن. دکتر میگه هر کاری که میکنه برای دفاع از حقیقت و وجدانشه و اهمیتی به خطرهایی که ممکنه پیش بیاد نمیده. حتی اسلاکسن که طرفدار میان رویه و میخواد که همه چیز با اعتدال پیش بره هم از دکتر حمایت میکنه و میگه که قطعا دکتر دوست واقعی شهره دوست صالح جامعه و فکر میکنه سنف مهمون دارها هم انقریب شعارشون همین باشه دکتر که دیر شده و باید به یکی از مریضهاش سر بزنه با خوشحالی و حیجان زیاد در حالی که خاطر نشان میکنه هیچ کدوم از علامتهای تحجب مقالش رو حضم نکنن که هیچ حتی چندتایی هم بهش اضافه کنن ازشون خداحافظی میکنه و میره. اونا با احترام دکتر رو تا دم در بدرقش میکنن اما بعد از رفتنش آسلاکس میگه که اگر دکتر پای حرفاش رو بخواد از مسئله چشمه ها اون برتر بذاره دیگه اعتلاف باهاش خیلی هم به صلاح نیست. و در جواب بیلین که اونو یه ترسو میخونه اینو هم اضافه میکنه که چیزی که از تجربه های زندگی یاد گرفته که اگه به دولت ها حمله کنی دست به جامعه آسیبی نرسوندی. چون آدمهای در اون صد خیلی توریشون نمیشه. اما اگر به مقامات محلی حمله کنی تا بر شن، اون وقت یه مشت آدم ناشی میان سر کار که دودش توی چشم همه میره هم به چشم دارها هم به چشم بقیه اینه که هر چند دلش با مردمه ولی عقلش بهش میگه که یه خورده هم به مقامات محلی متمایل باشند آسلاکسن به بیلین که تقریبا یواشکی خودش رو بری دبیری انجمن شهر نام زد کرده کنایه میزنه که اگر میخواد برنده بشه، بهتره که تند نره و یه خورده بادبوناشو جمع کنه. آسلاکسن بعد از گفتن این حرفا به چاپخونه میره، بیلینگ معتقده که باید از شر را آسلاکسن خلاص شد، اما هوفستاد بهش یادآوری میکنه که سرمایه لازم رو ندارن و اگه آسلاکسن بره دیگه کی میتونه پول کاغذ و چاپ به روزنامه رو فراهم کنه. بیلینگ یاد پدر زن دکتر استوکمان که آدم پولداریه میافته. هرچند میدونه نمی تونه روی این فکر حسابی باز کنه همینطور که نمیتونه روی برنده شدن در دبیری انجمن شهر حسابی باز کنه. بیلینگ معتقده که با رد صلاحیت شدنش پتانسیل خشمش اونقدر بالا میره که دقیقا همون چیزیه که توی همچین جای عقب مونده بهش نیاز داره تا صداش رو به گوشه همه برسونه بعد هم میره تا تقاضاش رو انجمن مهمان خونه دارها بنویسه. با رفتن بیلینگ همچنان که هفساد کنار میز نشسته و مدادش رو میجه، صدای تقیی به در میاد. پترا از در چپ وارد روزنامه میشه، کتابی از جیبش بیرون میاره و روی میز میذاره و به هوفستاد میگه که دیگه نمیخواد ترجمهش کنه و ناچارن که به شخص دیگه بدن این کار رو. هرچند احتمالاً اصلاً نتونن توی ندای مردم چاپش کنن چون که الانن با افکار خودشون در تضاده که خودش انگلیسی بلد نیست اصلاً نمیدونه داستان از چه قراره و پترا براش اینطور توضیح میده که داستان کتاب درباره قدرت مافوق بشری مثل سوپرمنه که حامی آدمهایی به اصطلاح صالح دنیاست و همه امور زندگیشون رو به بهترین نحو سر و سامون میده. همین سوپرمن همه های شرور رو قرار به سزای اعمالشون برسونه. به جای اینکه خود مردم برای سر و سامون دادن به زندگی و جامعهشون دست به کاری بزنن. یعنی ایده اینه که یا آدم دیگه به اینا کمک کنه. هوفسات که کم کم داره شخصیتش رو میشه میگه این دقیقا همون چیزیه که مردم ازمون میخوان اما پترا که عقیده متفاوتی داره میگه اون وقت شما هم میخواین جزو کسایی باشین که همچین چیزایی رو به خورده مردم میدن خودتون یک کلمش رو هم قبول ندارین خوب میدونین که دنیای واقعی اینجوری نیست و هرچند هوفسات ظاهرا میگه حق با شماست ولی هنوز هم نظرش اینه که یه سردبیر همیشه نمیتونه ترجیح خودش رو عملی کنه و باید در امور جزئی به افکار عمومی احترام بذاره وقتی مردم یه داستان اخلاقی مثل این رو توی صفحات آخر روزنامه ببینن رغبتشون به قبول مطالبی که توی صفحات اول نوشته شده بیشتر میشه. چرا؟ چون بیشتر حس میکنن که جامعهشون امنه. اگر یادتون نیست که قضیه کتاب چیه پرده اول و یادتون بیارید که پترا مشغول ترجمه یه چیزی بود. پترا وقتی اینا رو عصبی میشه که دارن اینقدر ریاکارانه برای دام دونه میذارن. و هر چند هوفزلدنگار انکار میکنه و میگه اینا فکرهای بیلینگر نه فکرهای خودش با این حال عقیده داره که کار روزنامه‌نگارها خیلی حساب و کتاب نداره پتر میگه شاید تو زندگی عادیتون اینطوری باشه ولی حالا که برای هدف بزرگ آستین بالا زدین و میخواین راه رو برای حقایق و عیده های نوعی که لگت مال شدن باز کنین و شجاعانه کنار کسی باشین که بهش توهین شده باید خودتون رو با از خیلی‌ها بدونین و اینجا حرفی میزنه که بالاخره ماهیت واقعی کارهاش رو فاش میکنه و تازه اینجاست که پترا میفهمه این کارای حفاد نه به خاطر خود حقیقت و یا شهامت و صداقت پدرشه که به خاطر چیز دیگه ای بوده که هیچ ربطی به خیریت جامعه نداره در واقع حفاد داشت همه این کارا رو میکرده به خاطر علاقه ای که به پترا داره برای همین هم هست که طرف دکتر رو گرفته پترا حالا که حسابی عصبانی این کارو نارو به خودش و پدرش میدونه. یه کار کاملا غیر شرافتمندانه که اصلا قابل بخشش نیست. همچنان که پترو داره با عصبانیت میره، پیش از اینکه هوفسات بتونه حرفی بزنه، آستاکسن شتابان و یواشکی از چاپخونه میاد و به هوفسات خبر میده که شهردار اینجاست. یعنی توی چاپخونه است و میخواد باهاش صحبت کنه. هوفسات به سمت در چاپونه میره و با ورود شهردار به دفتر تعظیم میکنه و به آستاکس میسپاره که باشه کسی بویی نبره. با احترام کلاه و عصای شهردار رو میگیره و روی سندلی میذاره. بعد هم وقتی هر دوشون کنار میز نشستند، شهردار شروع میکنه به صحبت درباره گزارش دکتر. هوفستاد اما اشاره بی احترامی میکنه ولی همون موقع است که آسلاکسن از اتاق چاپ میاد و سراغ مقاله دکتر رو از خود هوفستاد میبینه. هوفستاد که میبینه اونجا خرابه و گند زده، سعی کنه خودش رو به اون راه بزنه، تا قضیه کنه، جالب موفق هم میشه. شهردار شروع میکنه به صحبت با استاکسن و تعریف کردن ازش ممان این فرد معقول و متین کسی که جو کلی میونه طبقه مردمی متوسط رو خوب میشناسه شهردار میره سر اصل مطلب و میگه طبق برآوردهای اولیه تغییراتی که پژوهشگر چه شما فکر میکنه لازمه بالغ بر چند ست هزار کرون خرج روی دستشون میذاره من ناچارم بابتش از جیب مهمانخونه دارها مایه بذارم مخصوصاً که سهامدارهای چشمه در وضعیتی نیستن که بخوام بیشتر از اونی که تا حالا خرش کردن قدمی بردارن و از همه بدتر اینه که این کار دو سالی زمان میبره و طبیعتاً مجبورن به خاطرش کل چشمه ها رو توی این مدت تعطیل کنن حرف به اینجا که میرسه هماستاکس و هوموفستاد هر دو پاپ حس میکشن میگن توی این مدت ما مهمون‌خونه دارها از کجا نون بخوریم ما که نداریم شهردار که دقیقاً منتظر شنیدن همین حرف بود از خدا خواسته بهشون میگه که بیانیه کوتاهی رو آماده کرده با نقطه نظرهایی کاملا بی‌طرفانه و توش اشاره کرده چطور میشه بدون افزایش بودجه نواقص رو برطرف کرد. وقتی شهردار توی جیبش داره دنبال بیانیه میگرده همون موقعشش ماسلاکسن به دکتر میفته که داره از طرف چاپخونه به سمتشون میاد. شهردار هول میشه نمیدونه کجا مخفی بشه و هوفستاد به در سمت چپ که بیلینگونجاس اشاره میکنه و شهردار بدون اینکه که حواسش به وسایلاش که روی سندلی گذاشته بود باشه فورا وارد اتاقی که آسلاکسن با تعظیم درش رو براش باز کرده میشه آسلاکسن و حفستاد برای اینکه طبیعی به نظر بیان خودشون رو به کار مشغول میکنن حفصاد میشینه و به نوشتن تظاهر میکنه و آسلاکسن مشتی روزنامه روی سندلی زیر رو میکنه دکتر استکمان وارد میشه و میگه که میخواد درباره نکتهای ای باشون صحبت کنه. اونم اینه که وقتی مردم فردا صبح مقالش رو توی روزنامه بخونن. از سر احترام زیادی که براش قالا تحت تاثیر قرار بگیرن و اون را انگیزهای ای بدونن که بخوان خودشون آینده امور شهر رو بگردونن مخصوصا مردم طبقه محروم اون وقت اگه بخوان راه کنن یا توماری چیزی جمع کنن باید حفظاد و البته قول جدی بدن که جلوشونو بگیرن اما قبل از اینکه هوفساد بتونه برای دکتر توضیح بده که رأیشون برگشته کاترین همسر دکتر استوکمان با کلاه و پالتو از سمت چپ وارد میشه کاترین میگه اومده تا دکتر استوکمان رو با خودش ببره و به شوهرش میگه که حق نداره به فکر زن و بچه هاش نباشه و همچین راهی انتخاب کنه دکتر میگه پاک زده به سرت کاترین مردی که زن و بچه داره حق نداره حقیقت رو به مردم بگه حق نداره حتی اکثر تلاشش رو بکنه که شهروند مفید و فعالی باشه، حق نداره وظیفه‌ش رو نسبت به شهری که توش زندگی میکنه انجام بده. اما گوش کاترین به این حرفا بدهکار نیست و بهش میگه با اینکه میدونه شوهرش ترین آدمه توی شهره ولی خیلی راحت میذاره بازیش بدن و با باچاپ شدن مقالش حتما شغلش رو از دست میده. اما دکتر استوکمان عین خیالش نیست و دل خوش کرده به اکثریت که در خیالش هواشو داره. و از کاترین میخواد که بره خونه و به کارو زندگیش برسه و بذاره اون هم به امور جامعه برسه که اینجا میشه نقدهای فمینیستی به نمایشنامه یا کاراکتر دکتر استوکمان صورت بگیره دکتر استوکمان همینطور که دستاش رو به هم میماله و در دفتر پس و پیش قدم میزنه میگه حقیقت و مردم باید پیروز میدون باشند میگه همه شهروندای خوشفکر و مستقل رو می‌بینه که همه فاتحشون رو سازمان میدن بعد کنار صندلی همونجاست که چشمش میخوره به چیزی که قراره باعث بیقراری آسلاکسن و البته هوفستاد بشه. دکتر استوکمان کلاه رسمی شهردار رو با دقت با سر انگشتاش برمی‌داره و بالا نگه می‌داره. حدس میزنه که شهردار اومده تا با هوفستاد و بقیهشون حرف بزنه. البته میفهمه از اونجایی که غیر ممکنه شهردار بدون اعصاب و کلاه رسمیش اونم با تعصبی که همیشه نسبت بهشون داره جایی بره، پس حتما وقتی چشمش به دکتر افتاده خودش رو در جایی اینجا قایم کرده. دکتر میخواد عدای برادرش رو در بیاره. کلاه رسمی شهردار رو بر سرش میذاره، اساش رو هم در دست میگیره و با اسا در اتاق سمت چپ رو چارتاق باز میکنه و بعد سلام نظامی میده. شهردار برافروخته میاد بیرون. بیلینگ هم همینطور. دکتر میگه احترام بذار پیتر جان. الان منم که ولن پایه ترین شهرم و بعد در اتاق با تبختر راه میره. شهردار میخواد کلاه و اساش رو پس بگیره اما نمیتونه دکتر استوکمان همچنان که داره عدای شهردار رو درمیاره تا نشون بده برادرش صرفا به خاطر داشتن یه کلاه و رسمی که احساس قدرت میکنه و فکر میکنه که دیگه میتونه هر دستوری که بخواد بده و هر کاری که میخواد انجام بده، میگه که فردا توی شهر انقلاب ب پا میشه و اون وقتی که شهردار رو از همه مسئولیت‌های رسمیش اخراج میکنه. چون نیروی خروشان جامعه رو، پشت سرش داره. دکتر مطمئنه که هوفستاد و بیلینگ توی ندایی مردم مثل رعد روی سر شهردار خراب میشن. آسلاکسن هم به میدون میاد و با رهبری کل سنف مهمون دارها، اما حرفش به پایان نمیرسه. چون هم آسلاکسن و هم هوفستاد و هم بیلینگ هر سه میگن که همچین خیالی ندارن و اونقدر احمق نیستن که خودشون و رو سر خیالات دکتر برباد بدن. که دکتر مسئله رو عوضی مطرح کرده بود و اینه که نمیتونن ازش حمایت کنن هرچی دکتر رشته کرده بود پنبه شد دکتر استوکمان به اطراف نگاه میکنه و میگه اینجا چه خبره ازش میخواد که لاغل مطلبش رو چاب کنن و خودش اونقدری مرد هست که بای چیزی که نوشته بیسته اما اونا بهونه میارن که نمیشه که جرعتش رو ندارن که افکار عمومی مردم روشن سنف مهم و بقیان که روزنامه رو مدیریت میکنن و خودشون کار این نیستن. حالا هم که همه علیه دکتران چون اگه این مقاله چاپ بشه به برشکستگی کامل طبقه متوسط منجر میشه. و بعد شهردار نوشتش را از جیب کتش در میاره و میگه برای روشن کردن ذهن مردم این نوشته کفایت میکنه. این نوشته همون بیانیه رسمیه که قبلا دراش حرف زده بود. ح نامر از دست شهردار میگیره. و میگه که حتما ترتیبش رو میده تا فوراً چاپ بشه. دکتر بازم سعی میکنه متقاعدشون کنه که حداقل مقالش رو اونم به خرج خودش تو 500 600 نسخه به شکل جزوه چاپ کنن. اما اسلاکسنا با پاکی رو روی دست دکتر میریزه و میگه به خاطر افکار عمومی اگه حتی دکتر هم وزنش طلا هم بده موسسش رو در خدمت همچین هدفی نمیذاره و مطمئنه که هیچ جای دیگهای هم توی شهر این رو براش چاپ نخواهد کرد. دکتر مقالهش رو از دست هوفستاد میگیره، کلاها احساس رو برمیداره میداره و میگه که به هر حال علنیش میکنه. شده توی جلسه عمومی میخونتش تا همه همشهریهاش بالاخره صدای حقیقت رو بشنون و این بار شهردار به پاکیرو روی دستش میریزه و میگه هیچ انجامنی توی شهر، سالن اجتماعاتش رو برای چنین هدفی در اختیارت نمیذاره. کاترین باورش نمیشه که همین کسایی که تا دیروز ادعای همراهی و یاری همسرش رو داشتن، حالا یهو بر علیه شدند. با تعجب از دکتر میپرسه چه اتفاقی افتاده چرا همه مخالفش شدن و وقتی میفهمه همشون فقط به فکر خودشون و خانواده خودشونن نه به فکر خیر جامعه بازوی همسرش رو میگیره و میگه حالا که اینطوریه پس بهشون نشون میدم که چطور یه زن میتونه مرد باشه منم پشتتم ماست دکتر استوکمان حالا با دلگرمی تازه‌ای که گرفته میگه شده تبال عجیر میکنه تا باهاش توی شهر را بیفته و حقیقت رو سر هر کوچه و بازاری جار بزنه. شهردار برادرش رو یه احمق میخونه و دکتر هم این کار نمی‌کنه. کاترین که می‌بینه اسلاکسن و حفظات هم دارن برای شوهرش رجز می‌خونن که هیچ کس نه حتی یک نفر هم همراهیش نمی‌کنه، در حمایت از شوهرش میگه که جفت پسرهاشون هم همراهیش میکنه. دکتر که از این پیشنهاد به حیجان اومده، یاد دخترشون پترا هم میفته که میتونه همراهیش کنه یا حتی خود همسرش، کاترین، اما خودش رو کنار میکشه و میگه نه. اما کنار پنجره به تماشاشون میسته. دکتر از حیجان همسرش رو در آغوش میگیره و با اعتماد به نفسی فضاینده رو به بقیه میگه که حالا خواهین دید آیا مک رو ریام میتونه دهن وطن پرستی رو که میخواد جامعه رو پاک کنه ببنده یا نه. و بعد در حالی که با کاترین از در ورودی سمت چپ بیرون میرن، شهردار فکورانه سرش رو تکون میده و میگه حالا دیگه کاترین رو هم دیوونه کرده. خب این نمایشنامه هم مثل نمایشنامه قبلی چون طولانی بود و زمان زبطش هم طولانی شد در دو قسمت برای شما آماده و منتشر شد همین حالا بعد از تموم شدن این قسمت میتونید قسمت بعدی که همزمان با این قسمت روی فیدالف قرار گرفته رو گوش بدید